اگر با همسرش در سفر بوده موقع برگشت اول صبح به منزیر رسید این روز با همسای در سفر بوده به معنی یا پیش همسر دیگرش برود سوال اول وازن نیست کسی دو زن دارد موقعیت رو ایجاب میکنه خب دو زن داشته مبارک دو تا سه تا چهار تا مبارک این که موقعیت ایجاب میکنه یا موقعیت شخص ایجاب میکنه یا که خواسته شخص باشه هر حال جایزه دو تا باشه تا باشه این گناهی نیست دوتا گریفتا گناه نیست ستا گریفتا هم گناه نیست چارتا هم گناه نیست اجازه همسر اول هم شرط نیست گناه رعایت نکردن ادالت اگر عادل نکرد ظلم کرد این گناه هی. اگر با همسر اولش سفر حالا برمی گرده اون روز کجا استراحاد بکنه پیش امون که یک با با هم مسافرات بودن برای بعضی که دل کندن سخت شاید دخن بران بیرو اما این کارها برای دلکنده نیست حالا چون واید خانو بیشتر خوش میگذره، اینجا استراحت میکنه، انجوری نیست. سفر بوده فوراً نوبت خانو بعد شروع میشه بعد پیش خانو می‌باد درا